بسم الله الرحمن الرحيم الدین سایپینه لکرال بر احمد طلوع دلمون راونیتی توصیه مامان خونده شد در دهای بیستم از اتفاقی مبارکی سایپین ساز جدی مارو پیدا میکرومون اخلاق اکرومتهای اخلاقی اون اخلاقی که لازم هست هر انسان مسلمان و مومنی برای خودش کسب کنه و هم اخلاقی که خوب هست یا به اصطلاح فقهی مستهب هست مندو هست انسان متخلق به اون اخلاق باشه حضرت فرمایش کرد بعد از قرائت اون دعا دعا هشتم رو شروع کردیم دعا هشتم در واقع سپاتی رو برمیشمور امام سجاد منعلی که مضمون هست زشت و بد هست اما یاد میده که این نوع اخلاق رو باید کنار گذاشت منتعا شروع کلام حضرت یه شروع خاصی هست. حضرت ارض میکنه به خدای متعال و برای ما فرمایش میکنه که باید از ترس ثپات بعد پناه بود به خدای متعال. معمولا انسان وقتی درمونده میشه مشکل حد و سختی پیش میاد توان مقابله با اون مشکل و سختی رو نداره پناه میبره بگید وجود و موجود قوی تری توامن که در پناه رو مسان بیمونه از اون خطر همه علیه سلام در ابتدای دعا این گلوه برکرد میکنند با این مشکلات که اللهم همه همه و بک خدای من پناه به تو بیبرم من پناه به انسان های هم نوع خودم هلشن قبی باشن هلشن تباهمد باشن محبولا انسان وقتی گرفتار میشه هیچکس که گش نمیاد میره بزرگتر رو حل شما بیا با در میانی مشکلیمگر کلوبز نمیتون مقابلی کنیم هاش زور میگهه یا نهایت میره مثلا رو انتظامی کلان ت و بعد که دفع بلا کنه دفع مشکل کنه محلوم میشه که این مشکلاتی که هزار در این دعا مخوان پرمایش برای ما و احساس خطر میکنن زش خیلی خطرات سنگین و بزرگی که به هم نوع مراجعه نمی کنه پناه این خدای فقط تو میتونه کن کن کن کنی برمیش موره این نیموز حیجان از اون قلیان و هیجانی که در وجود انسان پیدا میشه حریص میشه انسان به مادیات از این حیجانات به تو پناه میبیرن و ثورة الغضب از شدت غضب که یکی از خطرات بزرگی برای انسان از حکور خدای به تو پناه میبرن و غلبه الحسد اینکه که ایسادات قلبه بیدا کنه بر من و منجر به بدخواهی و زحایل شدن نعمتی دیگران بشه که کار حرامی هست به تو بنابون تا موقعی که حسد در قلب انسان خوب موظل به حال خود انسانه الهسود و لایسود از این که نمیشه نه هسود نمیبره براش خودخوری اجاب میشه از درون خودش میکنه و به هم ولی وقتی رخ نشون میده در بیرون فعالیتی نشون میده به جهت حسادتش دنبال این هست که نعمت دوستش و طرف مقابلش رو ظایل کنه اینجا دیگه به حرام میشه هر قدمی که برمیداره قدم به حرام زحف حسابم. و, و قلات الغناه روز از ضعفی که در وجودم هست نمیتونم تحمل کنم، نمی‌تونم آرامش بدم به خودم. به محض اینکه بشکلی پیش میاد، اصلاً حال نشون بیدن. از این ضعف صبرم به تو پناه می برم. صاحب این صفت درونی از صفات خلقی و اخلاقی هست از کردم احکام احکام شرعی و دینی فقط برای اعمال نیست نماز و روزه بو نمیدونا مسائل فردی و اجتماعی فلکبردار در مورد اخلاقم احکام داریم مثلا همین صبر صبر در بعضی جاها واجبه که انسان صبر کنه مثل اونجایی که اونها پیش میان، از صبر و علم محصیت واجبه انسان نگه داره، تحمل کنه اون حیزان درونی رو اون در واقع احساسات قلیز و شدیدی که گاهی پیش میاد، نسبت به گناه واجب تحمل کنه خودشو نگه داره این صبر صبر واجبه گاهی صبر خوبه مستحبه مثلا مثلا داره که الصبر على الوهدة علامة قوة العقل انسان اگر تنها بمونه اجا به تنهایی صبر میکنه این علامت زیادی عقل میشه در تنهایی میتونه تحمل کنند همین که تنهاش میگذارید یه چند دقیقه ای این خوبصورایش سر میدارید برمار نگاه میکنند خوشی شوهر میدارید بعد هم حمله بر توحین به حساب میارید این من رو بیل کردید یه عذابی مثلا برش پیدا شده یکی بیحرمتی برش پیدا شده ولی حضرت از امیر الله علیه هست اینوارد فرماد اگر میخوین آقل بشناسی بیشناسین فردا کسی که بر تنهایی سبولی نشون مده این علامت قبط عقلش هست عقل در کلام عقل ذهنی و استدلالی و عقل منطبی نیست عقل در روایات اون عقل عملی رو بیگن یعنی عقل سوال کردن اون شکر که مناش چیه؟ خضرات فرمود که هن عقلو مابده به هر رحمان و ایک سبب به هر جنان عقل اون توان و نیرویی که خدا در وجود انسان قرار داده انسان با اون طبان و میتونه با رو میتونه هش رو برای خودش کسب کنه میتونه خودش رو عبدی از عباد باری تعالی قرار بده. یه وسیله قیمت و برقدرتیه محدود الهی هم هست یکی از اول مخلق الله ها عقل. خدا در درون انسان قرار داده ولی زن میتونه انسان با این توان کسب جنت کنید. در دنیا زندگی مثلا سالم و خوبی داشته باشه هرکه عقلش میخواد زیاد بشه باید عامل به خیر بشه از گناه دوری کنه عقلش هر چی میگذره کاملتر میشه صبر یکی از عوامل مهم خوب زندگی کردنه گاهی انسان این مشکلاتی براش پیش میاد در زندگی هیچ ای نمیتونه بکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه مگر گزر زمان بعد بس انسان بعضی کارار به گزار زمان جذا و پذر کردن کار رو خرابتر میکنه. بعضی موقعه هست ثبر مستاقش فقط سکوت نیست. با آامش گذشت کردن از کنار مشکلات فقط نیست. باید یه تلاشی هم داشت. تا دا تلاش هایی که در مقابل سختی آدم داره، گاهی سختتر از اون سختی میشه. سرتر از اون مشکلی که پیش اومده برای رب مشکلات باید یه تلاش کرد لازمش آرامش و سبره ویلو انسان تمرگوتشو از دست میده کارایی میکنه که نباید گاهی این سبر روش رشد انسان میشه مثل صبر بر گناه صبر بر تاعت صبح مثلا صبح این زمان بهار که دیگه شبها داره کوتاه میشه و صبحش خیلی نزدیک به سر بشه، بلنگشه انسان نماز بکنه با آب سرد و غیر سرد حضور بگیره خوابش رفته این صبر میخواد دیگه این صبوری میخواد برای اینکه بتونه به این تاعت به اصطلاح عمل کنه اینم هم یه نو سبره سبر بر تاعت صبر بر محصیت صبر بر تاعت چیه؟ عجبه صبر بر محصیت نکردن هم عجبه بس ببینید یک موضوع اخلاقیه ولی حکم شدید داره پس چرا تو رسالان نگفتن. مرحوم شهید سانی، صاحب شرح لومه یک کتابی داره به نام الرسائل چند تا متن رو کنار هم قرار داده شده یک کتاب ایه کتاب رسائل یعنی رساله های مختلف در یه مجلد شده اونجا در یه عبارتی داره اواخر رسائل داره که ما در مقابل خدای متعال توبه میکنیم طلبه گفران میکنیم که مسائل اخلاقی رو احکام اخلاقی رو بررسی نکردیم همش مسائل احکام عملی اونم فردی چون موقعیت نبوده کسی اصلا سال براش پیشهمیومده که من این مشکل رو رو مرجع تعلق بس برخورد همه مشغول کارهای معمول بودن خیلی آرامش نبوده آسایش نبود برای شیه نهایتش این بوده که می آمدن ساال میکردم و نقاض بود رو وزمون رو حج رو مسایل و فردی این آقای قانون می کرد سر صدا می کرد دادید می که چرا ما آقا پروانش کردی که باید تمدن من اسلامی داشته باشیم ولی اون مجوز چیزی احکام تمندیون رو اما اون احکام سیستمی اینتزامه الان شهر شورای شهر دارید بر اساسی نظام یابون ها رو میکشه و نقشه براش در میاره و اجرا میکنه. ما هم بدونه اینکه خودمون متوجه باشیم خودکار برای رسیدن به مقصدمون از این ها استفاده میکنیم. احکام تمتونیم برنامه میریزی بر اساس یک سیستم نظام دینیه اصلا حکم نداره کسی نمیاد بگید. در مورد مثلاً اول ساختار میماری و شهرستادی جناب و من چیجره کنمو بسازم این سیستم حاکم وقت باید اون سیستم رو پیاده کنیم مردم دیگه بدون اینکه کافر باشن یا محنون باشن حاسق باشن یا مثلاً مطیق باشن الان مثلاً این مسیره تهران رو بیان ببندن این راه دیگه باز کنه. اگر راه ترزمی زوش و سو روپتایی باشه همه تشکره میکنن هیچی کس اعتراض نمی کنید این دیگه چه اجباری ما را از این ملید انداختن این میکنید راه بهتری رو ایجاد کردن مثلا در بحث تمتن باید سیستم رو سیستم دینی کرد فرس... و فر فر یعنی نظام نظام دینی بشه. بعدم این نظام یه شبکه است. یه شبکه‌ای به هم پیوسته است. همه‌ی سانسورهایی که داره بر اساس دین میان سیستمش رو تشکیل میدن مسی شبکه تو هم تنیده است. هم متوازنی میشه که این سیستم دینی در زندگی ما، مثلا شهر میشینام، ها و همه اونایی که دید حکومت هستن چیدمان شده. خودکار همه میرن به سمت تاعت و اندیری. دور میشن از خلافت فرمان خدا. همه اینها در دین هست. احکامش هست. منتها ما عادت کردیم که احکام فردی مثلا عبادی رو فقط برای خودمون حکم میکنیم در, همی در هم همینطور در اعتقاداتم حکم شرعی داره مثلا مثلا اعتقاد و باورمندی اینکه خدا الله شریک هست واجب شرعم شرعم واجب ما باور داشته باشیم که خدا اهد است قل هو الله احد درین ای خبر میدی اما می میفرمد که گاهی اخبار ده از انشاه هست ابلغ از انشااته قل هو الله احد خدا احد است این از واجبات اعتقادی که ما خدا رو احد ببینیم و باور بداریم از اون ورم حرامی که برای خدا شریک کار میشین این رسالها که کوچک و مجازم هست وا میشکنین عتقامشکنین نوشتند اعتقادات احکام فردی یا رساله که آی مزاهری نوشتند رساله عملیت ولی احکام اخلاقیان درش اوردن این ابداع نیست این در های احادیث ما همه مشخص شده قدمایش محلومه کسی مراجعه نکرده در بحث هم همونطوره سیستم تمدنی نظام تمندونی مون منظومه تمدنی رو در احادیث ما داریم تا لزومی نبوده تا به حال کسی مراجعه کنه این معروف در بین گزرگان از اهل عیل که مجموعه کتب روایی که ما داریم از اهل بیت علیهم السلام مثل کافی شریف ملایعزار استبسار تهذیب و همسال اینها پونزده درصدش استفاده شده هشتادو هشتاد و پنج درصدش حاکمن مونده و به حکومت اینکه ما میفرمودند حکومت اهمیتش از نماز حفظ حکومت از نماز واجب اهمیتش بیشتره به همین خواهده اگر حکومت دینی و حکومت دینی باشه نظام تمکتونی میشه ایجاز کرد و اللہ با هم افکان پردی عملی و رساله های معمول دین اکتبای کرده خیلی اصاب ناراحت میشه دلش میشوده که این همه زحمات امام السادق سلامون علای، امام باغذر سر علای، و همه از ها مجموعاً زحمت کشیدن که این نظام خوابی گیده در مدان دینی ایجاد بشه و پرد روزه احکام قردی که ما ها باید باشه و خیلی هم مهمه ولی در فراموشاتشون احکام نیزانمند احکام تمدنی رو به خوبی بیان کردم پس که از چیزهایی که ما باید جدی ببینیم و خیلی مهم هز خیلی ترسناکه اینکه ما ضعف مثلا صبر داشته باشیم وقتی انسان صبر نداره قاراش پیشتهمیره درهم میشه، خراب میشه. میشه به قول به هم هر از میشه چیزی که میشه اوگیش بشادم بگم، خارج میشه از <تصفيق> یکی از مشکلاتی که ما بایش ترگیل هستیم و کمتر بریش توجه دردیم و تقریم بارات دعای امام علیه السلام اماموانی ایک خطر بزرگ از میکنن، می بزرگی به خدا پناه رو این هست که اینی عووز رو به قیلت رو قناهت خدای ما این قناهت ما باید در زندگی داشته باشیم ولی کمید یک کمها رو زیادیش کنید از این بیدنه این خیلی خاصلی مهمی مشکل بزرگیه که ما ها رو چندی نبیدیم باید به خدا قناه برد از این مشکل بزرگ این سختی بزرگ که اسمش کمی قناهت از زندگی کناه از با که اقتصاد نمیدونیم اون چی که ملاک غربی هاست در اون مهم نه. زیاده اثار کردن، اثار, کردنه. اثار کردنه. اونا پایی اقتصادشون اثار دیگه اصلا اینکه ما یه میکنیم یه آب میکنیم تش رو میزاریم ببین بکلاس یه تا آخرش باب شده دیگه هزارو تا آخر نمی کنید این حالا می‌تونید کلا این خود دیگه تا ترشم سنید. با نمود و می‌کنید ذرش رو دیکه کلاس این از اون بردید مبنای اقتصاد غربی همین هست حساب گراهی یه آلت‌هایی رو یک قربیاتی رو ایجاد کنید محساب بیشتر میشه، تولیدات اون‌ها ایسلاو میشه با اسلام نه اسلام مبنای اقتصاد اسلامی به اون میدار کنید مرزمه مصفل کنی بیشتر کنوات اون مانوشون و سیکاهی آدم از مانوشون از استفاده کنه اینو خیلی کنید میشه کنید زید کنوات اگر کسی اسلاو نکنیم بیان کنوات هایی که خیلال کردن بیلومنشی زندگی کردن خمخوری و مثلا همیشه کونه پوشی و خصاصت را خصاصت خصیص بودن و تشترمی بودن خصیص در کلمات مامساده علیه السلام یه عبارت واقعا بدی هست خیلی مهم در اقتصاد شب شب شب, شب, شب, شب امام, هز. امام, هز. امام, هز. امام هز اسم ما در صف شیعیان همه هزرت شلو صدف شده و تصویر میشه امام که بله کسی که کونه نمیخوشه نونه نمیخوشد کسی که ما نه که نوم می پوشن که هلی نیمی پوشن هزر بفاوت که همیشه نوم همیشه از مال خودشون نیمی پوشن نهای که نوم پوشه هستن هم املاً سربطانده های دیگه. همیشه نوم می پوشنن نشونه اینه که دارندن مسئولا کجا نیارن همیشه نوم می پوشن؟ که همیشه نو میشه همه کلله هست هم کلناس هست نیست با زحمت میکشم نیست زحمت میکشی ولی چیکار میکنی که همیشه نوم میشه هزت خیلی ازمونتی زریف رو برمایش می کنید پرمولن هرده کنات تو کونه کونه می توشن بیرون ها می کنید نوم می پوشن اونای که همیشه نوم می پوشن یعنی یک مقداری دوست وقتی چندباری باری میشه این دیگه با خانومای ندارم یکی دیگه شده یا ما ساین رو دیدن کمکار دیدن یکی دوباره چند باری دیگه دیگه این یعنی مستاگیراهی چه آدم داره بپوشه همیشه نو بپوشه قیبی نداره اونتا چون میران که ناعتنی مجبوره که دیگه این روال رو تیل کنه همیشه دونیا رو بکایه آیا نمیشه، نمیشه، هرقه گاهی داره، گاهی بلندی داره، گاهی آدم با خیره، فلا برشکت که، نه، باید کمی هست این باید همیشه جور کنه از بجا جور کنه هر جوری شد ازاق ناعت فرکلت ناعت، رفکلت ناعت،, ناعت، ترمان به خطر بزرگ میتونه باشه انسان اهل به ناعت باشه به مدار لازم مصرف نکنه. میوفته به باسه کارهایی از هر راهی رزق خودش رو کنه حلال و حروم و شبهنان که به شبهنان بنزینی که میکنه میزنه می خیلی که خوب هرکت کنه برای جوانستان بسطیق بیابون ادام می اون کسی که حلق بنات نیست با ایمان شو بنات نایش دیگه باید کن شیرز کنید بایی حلالی بایی حرومی بایی ایمان نصران، از این سبت هم به من عادت که خدا یا من رو که کم هست تو زیاد کن. تو این احساس این رو به من ارزانی بداد که مشکلات بعدی کامپیش نیومد. خدا را صمدم به بعد خودش بهم میگه من دویی مگر اینکه میشه میلیاردیم خاص خاطرمند میلیاردها موسیقیم. خدا اوه توبیم روی داری دین می شیوییum اجون زمان بسم الله الرحمن الرحیم های کوچک را گرفتیم چون نمی توانیم اهل بیت که در مرتبه بسیار بالای هم هستند اولوی خود قرار دهیم اونایی که جذاب ما دارن، اونایی در شرک پایین که که ما او حدود با امانیمان که بود کنیمی ترسیش دیگر کنیم کنیم کریم از دیگی این کریم هستم از بر به نظر حاجی خوشرو و اندامهای طبع تاباطایی در مورد اینکه قرآن بیان روشنی دارد و قرآن با قرآن تفسیر می‌شود نقش اهل بیت علیهم السلام در ارتباط با قرآن چیست اهل بیت علیهم السلام شرحی جز ایران مقدمات به ان حمات رو به زندگیش کرده اسان به قران و اذکار داریم صلوات سلام وقت نماز وقت نماز وقت نماز تمام وایو ثابت میشه نماز واجبه، است سایکولوژی واجبه. واجب است هر چیزی که تشکی سری تشکی ذاتی سایکولوژی قرء حدیث شرع در این صوری رحیم مسائلی نماز نماز داره اقید مصرحا نماز را اقامه کنم ایمالی مصرحا پاید هزار روایت رویت نماز پرمویش کردن اونا بیدونید دیگه دیگه کاری میخواد عملی بشی باید جوزی بشید جوز رو برای حرکت از اپسیدات و امتحار نماز رو انزوم بیدید باید روشن بشید هزرات مفسق خواهیات هستن نمو پستیار تفسیر دنی یعنی کشمولتا قرآن مبین نظر بیال بحرمین قلبی بلسان عربی مبین مبین در همین جای باران جای جا. هر جا که سفر کتاب سفر کتاب دراداده شده لازمی تردی نیست روشن که بوشن کننده است بودش رو بوشنه بودش داره هست اونتا ها شراریت رو رو هزراش پایدش کردن برای اعمال بویا شده باید به امام صدام علیه السلام یک مکته در ایشان مفاده از طرف کسی که گونه نظاره نو هم نظاره فیتو پروتسیدانیتی از طرف من بیشتر بود کسانی که گونه پوش نو پوشا در همیشه انسان نمیتونه بود داشته باشه برای این نوع بشه با می افته بگیل به اون رو باید پورتنگی کنه می کنه برد تو عرض مونه چی کش من نرم مسلمان پسران و که این دستگیر این هم. که نباید صورت هتل می‌بینیم هتلی مسلمان چندصد طرابی پنجصد یا این دنگاه نمیشوند بشن نه که کونه میکوشن بیتونه نو هم لاحی میکوشن تو کونه قدیمه هایی بود دیگه و اگه یه رباس رو که و در اون ها چهار پایینز از اون نبا ها میکوشدن بزرگ می می می اصلا به That's why uh, I'm used to put in jail. I looked here and I brought this to the village. As yours I've said, I lived here. When I go and go to work, I don't want to. I'm living to the other, I'm the second one. If you I don't want to tell you to. So I'm the only one who's here. همه روز دارید برد شما همین رسیگرام داشته باش که بیدونید چه قبلید لازم نیست آدم بدونید این دو رو برمایی تو دل همه رو برده یه تو این شما هرم همه رو توسه تنهی کرده dolmuş sanayi dolmuş 3 نتیجه çok را الا چی میشه که در آب آزمون بره؟ چه مرس به آب وقت کمتر رفته شد. اتاقی اون ناتلوزیت چی بود؟ اصلا به آب کم شده. افی بیست و هم مساله میاد پایین. چی اثباتی هست؟ اصلا کار نمیکن. شاید بین افروت اثباتی. وقتی ما اون اینو دیلوگامون داریم. sensu comun. Como hakimiyet tersi krediler. Hakimiyet tersi e lei não me اللهم ماشین على محمد وعلى ال محمد وعتره وصحبه اجمعين سنتي موشطه يومين فاضين ليكو ها ایزاد به ما يتغيرش